خب از درس ثانی درس دوم تعریف الاسم تعریف اسم در درس قبلی گفت که کلمه بر سنو بود اسم حالا در این درس می هر یکی از اسم فل رو حرف رو در درس بعدی میاد بررسی کند ولی اسم فل رو در این درس تعریف الاسم الاسم و تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذ كلميت دلالات بمعنى ما در نفسش إن بس غير غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ولي إن معنا حمراء بايك الزمن هاي سكانية ماضي وحال وعنده ليس. خودش میگه احد اعظم ثلاثه رو اعلی الماضي والحال والاستقبال منظور از های سگانه ماضی و حال و استقبال هست نحو رجل و علم مانند رجل و که اسم هستند معنا دارن اما دلالت بر زمانی میکنن و علامت هو علامت اسم رو میگه آقا نشانی و ویژگی های اسم رو میگویید برای تشخیص و علامته علامته اص ان یصح الاخبار عنه و به خیلی علامته خویست میگه علامتش شیناست که صحیح باشد در مورد او خبر داد و به وسیله او خبر داد زید آمد ما اینجا در مورد زید چه کار کردیم خبر داری زید آمد فس زید اصمه باقید بگیم زید آمد فس چه الاخبار عنه و به مانند زیدون قائمون زید. مانند زیدون آه. آه. خب زید اسم است چرا؟ تون الاخبار عنه آه. زیدی صادق هست قائمون هم خبره چرا؟ تون ما به قائمون در مورد چی خبر دادیم؟ پس قائمون اسم چرا؟ چون به ما خبر دادیم و زیدون هم اسم چون در مردش؟ و اضافه دو من علامتش هست؟ مضاف بودن نحو مانند غلام و زید غلام و غلام اسم چرا؟ چون مضاف گیر بده. کل مضافه. فعل هم میتونه مضاف بشه. بله. و زید هم اسم هست. خیلی در مضاف مضاف الی جوفت düşüncesi asa. اسم. خب جمله که متفاوتی تسویلی در مفرد ها و دخول لام التعريف الیه و سبون این علامه که اسم چه داخل شدن لام معرفه لام تعریف بران لامی که معرفه میگرداند نه هر لامی مانند الرجولو مانند پس اینجا الرجول اسم است چرا؟ تو لام تعریف برش اومده است نگفته الف لام تعریف به این که در این مورد که آیا هم ام هم همزه با ال آیا هر دو تا حال یا فقط لام که درکت بزرگترشها خواهید خواند اختلاف نحوی ها ولی فعلا بدونید که نظر این واجبر در این هست که داخل شدن لامه تعریف مانند الرجل و علامت بعدی و فيه الجر الجرو علامت بعدی است که حرف جر برون جی باشد بله مانند فلم مدرسه است في. <تصفيق> بالي. وتدويله؟ <تصفيق> بالي؟ <تصفيق> بالي برول بتونه بارد بشي. خب شما. و في لها ها؟ يسح فيه الجار صحيح باثر كيتو جباشدران. بالي. اخ... اسمها فقط مجبور واقعی میشد حروف کیرامی ندارد فعلا که مجرور نمیشد و تنوین و تسلیت و جمع میگه آلاناتای بعدی رو ذکر میکنه ولی میگه آلاناتایی که تا اینجا اومدند همیشه کافی بودند بعد میاد میگه تنوین مانند رجولان و تسلیت منند رجولان و جمع منند رجال والنعت نعت مانند مانند رجل مؤمنون والتصغير فإله تصغير نمیشن مانند رجل عبيد حسين ك تصغيرها نعت صفات وصف تاثير تصغير تصغير ك شما در درسمون خونديد و در کتابهاي تبلي بر فعیل می آید البته در موتالها و بقیه تفاصیلی دارد که خودش سر وقتش خواهد آمد متعجی شدید مثلا رجل برازه فعیل میشه شه چی؟ رجیل حسن میشه شه چی؟ عبد می شه؟ عبید خب تسقیر علامه اسم بوده موقعی که اسم تسقیر داشت اون تسقیر نشانی چی هست؟ فیلا رو نمیشه تخبیر کرد نداء و فعل رو نمیشه ندا کرد یا ذره با نداء علامته ایس هست كل هذه من خواص الاسم تمام اینها از خاصیت های چی بودن و معنی الاخبار عنه معنی اخبار عنه چه هست که در درس گفته بود که توضیح مختصر توضیح کی دادیم ان یکون محکومن علیه محکوم علیه باشد یعنی چی؟ یعنی که مبتدا باشه که براش خبر یومده مانند زید قایبون یعنی ده. اینکه فائل باشه زر از زید زید زد ما در مرد زید اینجا کردیم خبر دادیم یا مفعول باشه زید را زدند زیدرا پس اخبار عن رو اینجا مفصل توضیح داد و معنی اخبار به و معنی اخبار به چون در یکی از ویژگی های اسم که یکی از اصلی ترین خصوصیات ت تناخت اسم اخبار عن و اخبار به اخبار عن و گفت منظور چه اخبار بهی ان يكون به. محكوم به محکوم به باشه چه باشه کل خبر مانند خبر یعنی شما به حصولون خبری بدید ما به حصولون چی کار کنید؟ غلام و زید نه ما خبر مانند زیدون قائمان مانند قائمان مانند چی؟ که ما به حصول قائمان در مورد کی خبر دادیم؟ زید زید میشه اخباران؟ اخبار به قائمون هم میشه اخبار؟ به این شد از تعریف اسم تعریف الفعل الفعلو الفعل کلمتون تدل على معنى في نفسها مقترين بأحد الأزمنة الثلاثة. فالكلام يذكر لغات برمانية كلت بتنهايش وحراس بايك الزمن هاي سكانين نحبو ناصره ما زيها يعني سروب مزارهس ونصورهمش عمر حس يا ريكول. فاس یا همراه با معنای گذاشته است یا حال یا آینده مظاهره میتوره هم دلالت بر حال کند هم دلالت بر آینده آینده که بعدا خواهید کن چه زمان دلالت بر حال میکند و چه زمان دلالت بر و علامته، علامت علامته فعل چه است، این یسحال الاخبار به لا این اخبار به وسیلش صحیح باشه ولی در موردش نه چطوری میگیم زهی دون زهی ما به وسیله فیل خبر دادیم الاخبارو به زیدون زره با و نسره ولی نمیتونیم در مورد فعل خبری بودیم آقا زد در موردش یه چیزی دیگه زد خورد در مورد زد میشه؟ خبری داد دانشمند خواهید شد خب و تو ها یسح الاخبارو بهی علامت فعلی این است که به وسیلش خبر داد مانند زید و ولا ولان اما در موردش در مورد زربه اینی بای و دخول و علامت بعدی داخل شدن قد و و صوفه و الجازب داخل شدن قد و سینه و سوفا و جازب سینه و صوفه مثلا فعل مظاهره رو به معنی مستقبل میگرداند فصوفه تعلمون خواهید دانست خب قدم فقط بر سر فیل ها می آید صوف همچنی و سیر و جازم چون؟ چون؟ فیل ها مجزوم می شند و مجرور نمی شند موقعی که جازمی اومده بود اون فعل دیگه چون جازم ها فقط بر می برخلاف اسمها که اسمها مجرور میشند و مجرور نمیشند اسمها مجرور میشند ولی مجرور فیلها مجرور میشند و مجرور نمیشوند که نمیشون. گفته بود در درس قبلی خب نحو قد نصاره سیانسرو سوفایانسرو و لمیانسرو که مثالهای قد و سیلا و جازم بودن علامة بعده أن يقبل التصريف إلى الماضي والمضارع والآمر قبول كنت شرف روح بماضي ومضارع وآمر وديكي واتصال بمائر البارزة المرفوعة به وواصل شدن زميرهاي بارزة مرفوية بآن من عند الزرب كتب تا كتب تما كتب توم انت تا تما توم تي تما تلنين زميرهاي بارزة مرفوية پس هرگر زمیر بارز مرفوعی به کلمه چسبیده بود بدون که این چی فیل. ما نمیتونیم تا رو به اسم چسبیده قلم تا قلم تا میشه؟ نمیشه میشه گفت قلم و کا ولی این کاف درست زمیره ولی زمیر بارز مرفوعی نیست منصوبیه زمیر چیه؟ منصوبیه مرفوعی نیست او پس علامت بعدیش گفتیم نحو کتابت و طای تانیس ساکنه و طای تانیس ساکن نحو کتابت کتابت این طای تانیس ساکن هست ضربت نصرت و نون و علامت بعدی نون التأکید هست اکتبن یا نه آ نولی تحکیب که بردون خفیته و شفیله فإنه کل هذه من خواص فیل تمام هر یکی ازیلای که شد از ویژگی ها و خواص چی بوده سیلی